سيودو ومين حديث فرمودي رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن المستشار مستشار كسيك استشار ميشي يعني كسيك مشورات ميشي وشاورهم في الأمر توسيع الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بو الصحابة مشورات بوكن نوالي نوالي نبوهر كسيا ونهوي كأهل مشورات أولين ما در مشورت داریم اینکه با کسی مشورت بکنیم که دلسوزه. خواب را رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که با کسی که دلسوزتون هست، محبتتون داره، تعریف کنه، نه با هر کسی. دیگه چه برسه به اموری که بحث دینه، بحث دنیاست، بحث ازدواجه، با کسی که خیرخواهمونه. چون خیلی از نفوس هستن که شر شرزار را میخوان. خیلی از خیلی ها دلسوز نیستند. خصوصاً روانشناسایی ببخشید، با ارشد پزشک میگنه واشناسایی که ادن اونایی که در امر ازدواج میرن مثلا باهاشون مشورت میکنن یا مخالفی که در زندگی دارن فورا تو طلاق و جدایی میکنه خصوصا در بحث تعدد زن دوم شده طرف مشکل روانی برخورد کرده میره پیش روانشناس میگه اصلا چرا این کارو کردی یا زن اوله میره پیش روانشناس میگه نه طلاق تو میگه با این ما نمیشه زندگی کرد میگه زندگی میشه شریکی توش باشه اینها امین نیستن با کسی مشورت بکنیم که امین باشه با کسی مشورت بکنیم که امینه امانت داره امانت داره مثل کسی که مالی بهش میدیم اون مالو نگه داره حق اون مالو به قول بکنه و حفظش بکنه برای ما این اولین شرطه. یعنی با اون کسی که امینیست باید نباید مشورت بشه. این که اون شخصی که هم باش مشورت میکنیم حق آن امانت باد باید عدا بکنه المستشار معتمه. توی که مشورت میدی برای مردم بدونا که تو مؤتمنی تو امینی اولا سر مردم رو نباید فاش بکنی دومن اگر میدونی این چیزی که خیریت اون طرف توش هست اونو بهش مشورت بدی اگر پات لغزید اگر حتی اگر خواب اشتباه تعبیر کردی تو مؤاخذه میشه اشتباه کردی نباید چیزی که نمیدونی نباید اشتباه می‌کردی نباید اشتباه بکنی حتی میگم خواب دیگه چه برسه به اموری که بحث زندگی هست بحث ازدواج بحث طلاق بحث تربیت فرزند حتی در بحث عبادت نماز و طهارتت نمیدونی نباید فتوا بدی نباید بکنی انسان باید به اون اهلیت علمی رسیده باشه باید اون امانت داری رو کسب کرده باشه باید به اون مرتبه ایمانی رسیده باشه درجه علمی رسیده باشه که بخواد اجتهاد بکنه و بخواد مشورت بده بس این شرط متقابله با کسی مشورت نکنیم که اهلیت مشورت رو نداره و اون کسی که مشورت میده مشورت نداده الا در اون چیزی که به خیریت دنیا و آخرت من درش هست اینا باید در درش دقت بکنیم و بعدم این نیست که ما میگه مشورت میکنی مشورت شور مشورت میکنی و اون شخصی که عالمه شور بهت میده شورشو بپذیر تو میای مشورت می در در عزواج فلان دختر عاشقش شدم ولی این دختر اهل نماز نیست خوازواج نکن هر عالمی بهت میگه نه من دوستش دارم دوستی تو دف کن تو قبرستان اموات نه که قبرستان اموات بلکه قبرستان مشرکین چون بین شخص مؤمن و شخص کافر چیه نمازه که من ترکا فقط کفر و اشراق شخص بی نماز شخص که اهل قبله نیست و دختری که بد حجاب تو رو نداره و و و اله خیلی از مسائل دیگه که که بهمون شور میدن مشورت میدن که ما باید بپذیریم خصوصا اون مشورتی که به خیریت دنیا و آخرتمون درش هست نه اینکه مشورت بگیریم و ما اون مشورت رو نپذیریم نه مشورت گرفتیم مسائلمو بپذیر و انجامش بده و دقت کن هرچند که من توصیه میکنم قبل از استشاره حتما استخارتم با خدا بگو اللهم که به بعلمک و به بقدرتک اول به خوت خدا بزار اول بیا با به درگاه پناه ببر و بگو پروردگار رو تو از آینده میدونی و من نمیدونم تو میتونی و من نمیتونم و به قدرتت پناه میبرم پروردگارا به علمت که اون چیزی وصلحتم هست و رقب بزنی اگر خیریت برام آسان کنی اگر شر ازم دور بسازی بعد بیا اون شخص اما امینی را انتخاب کن و باش مشورت بکن و شورش رو بگیر